کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افثانی صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عزیمه علی گلزاده داستان شاهزاده رینگ روزی روزگاری پادشاه و ملکه بودند که در سرزمینشون زندگی میکردند. اونها یه دختر به نام اینگیبورگ و یک پسر به اسم رینگ داشتند. پسر هیچ اراغی به ماجراجویی نداشت چون زورش اونقدر زیاد نبود که به شهرت برسه و در هیچ نبردی پیروز نشده بود. در یه روز سرد زمستونی وقتی او دوازده سال داشت همراه افرادش برای تفریب جنگل رفت اونها اونقدر جنگل پیش رفتن تا اینکه چشمشون به گوزنی افتاد که یک حلقه طلایی روی شاخش بود شاهزاده هوس کرد اونو بگیره همه گوزن رو تعقیب کردند اما اسبها یکی, یکی از نفس میافتادند بالاخره اسب شاهزاده هم خسته شد و این همزمان با تاریک شدن هوا بود و دیگه هیچ اثری از گوزن دیده نمیشد اونها از شهر خیلی دور شده بودند و باید سری برمیگشتند اما متوجه شدند که گم شدند اول همه کنار هم موندند اما کم کم هر کدوم ادعا کردند که راه درست را بلدند و به این ترتیب از هم جدا شدند و هر کدوم به طرفی رفتند شاهزاده هم مثل بقیه راه را گم کرد و مدتی در جنگر سرگردون شد تا اینکه بالاخره به فضای بازی نزدیک دریا رسید چشمش به زنی افتاد که روی صندلی نشسته و بشكهٔ بزرگی کنارش بود شاهزاده جلو رفت و معدبانه سلام کرد و زن با لحن مهربونی جوابش رو داد مرد به داخل بشکه نگاه کرد و دید ته اون یک حلقه طلایی زیبا افتاده به قدری از اون خوشش اومد که نمیتونست چشم از اون برداره زن متوجه متوجهی موضوع شد و گفت میتونه اون حلقه رو برای خودش برداره البته باید خودش زحمت برداشتن اونو بکشه. شاهزاده تشکر کرد و گفت سعی خودش رو میکنه. او سرش رو داخل بشکه کرد و به نظرش اومد خیلی راحت میتونه حلقه رو برداره. اما هرچه بیشتر خم میشد بشکه هم امیختر میشد. همانطور که او خم شده بود و دستش رو به طرف حلقه دراز کرده بود ناگهان زن بلند شد و او را با سر به داخل بشکه هل داد و گفت میتونی همیشه همون جا بمونی. بعد در بشکه رو بست و اونو به دریا انداخت. شاهزاده در وضعیت بدی گیر افتاده بود. متوجه شد که بشکه دیگه روی زمین نیست و با موجها بالا و پایین میره. شاهزاده نمیتونست چند روز در اون وضعیت مونده اما بالاخره احساس کرد که بشکه به سخری برخورد کرد. او امیدوار بود به خشکی رسیده باشه. و اونجا فقط یه جزیره کوچیک نباشه. بالاخره شاه ساده طی و شکست و تونست خودشو به خشکی برسونه. بعد از بالا رفتن از چند سنگ صاف به سخراهای بلندی رسید. به نظر می اومد بالا رفتن از سخراها کار غیر ممکنی باشه اما او قدم به قدم جلو رفت و بالاخره موفق شد. وقتی به قله رسید و به اطرافش نگاه کرد فهمید وارد جزیره ای شده. که سراسر اون رو جنگلی پر از درختان سیب پوشونده و در کل جای قشنگیه چند روز از اقامت او در اونجا گذشته بود که یک روز از جنگل صدای بلندی به گوش رسید او به قدری ترسید که دوون دوم خودش رو در میون درختها پنهون کرد کمی بعد چشمش به قولی افتاد که سورتمه پر از حیزمی را به دنبال خودش میکش و مستقیم به طرف او اومد شاهزاده چاره ای نداشت جز اینکه همونجا که پنهون شده بود روی زمین دراز بکشه وقتی غول به کنار شاهزاده رسید ایستاد و کمی بهش خیره شد بعد دستشو دراز کرد کرده اونو برداشت و با خودش به خونه برد و از او پذیرایی کرد بعد او رو به همسرش و گفت این بچه رو میون درختها پیدا کرده و میتونه در کارهای خونه بهش کمک کنه هیرزان خیلی خوشحال شد و شاهزاده رو با مهربونی نوازش کرد. مرد جوان کنار اونها موند و همه خواسته های اونها رو اجرا میکرد و آنها هم روز به روز بیشتر به او محبت میکردند. یک روز قول او را در خونه گردوند و همه جا را به جز اتاق نشیمن به او داد. این موضوع باعث کنجکاوی شاهزاده شد و فکر کرد حتما گنجینه یران قیمتی در اون خونه هست. به همین دلیل یک روز که قول در خونه نبود، او به اتاق نشیمن رفت و در را تا نیمه باز کرد. چشمش به موجود زنده افتاد که درون اتاق میدوید. بعد به طرف در اومد و چیزی گفت که شاهزاده رو خیلی ترسوند. طوری که از در فاصله گرفت و اون رو محکم بست. به محض اینکه ترسش فروکش کرد، تصمیم گرفت دوباره در رو باز کنه و به حرف جونور گوش کنه اما باز هم ترس مانع موفقیتش شد او از دست خودش عصبانی شد بالاخره همه شجاعتشو رو جمع کرد و برای بار سوم در رو باز کرد و دیگه از جاش تکون نخورد. تازه این بار بود که فهمید او موجود زنده یه سگ بزرگی که به او نزدیک شد سگ گفت مرا انتخاب کن کنشازاده رینگ شاهزاده در حالی که هنوز از ترس می لرزید از اونجا رفت و با خودش فکر کرد گنجینی داخل اون اتاق اون قدرها هم گرانبها نبود اما با این حال جمعه سگ از ذهنش بیرون نمی رفت. مدتی از زندگی شاهزاده با قول می گذشت. یه روز قول اولی به شاهزاده گفت می خواد که اون رو به سرزمین اصلی که خارج از جزیره هست ببره اون فرصت خودش رو برای زندگی رو به اتمامه او از مرد جوان به خاطر کمکهاش تشکر کرد و گفت یکی از انوارش رو به عنوان یادگاری انتخاب کنه و با خودش ببره رینگ از سمیم قلب از او تشکر کرد و گفت کاراش اونقدر ارزشمند نبودند نبودن که به خاطر اونها هدیهای دریافت کنه اما اگه قول میخواد به اون لطفی بکنه بهتر چیزی را که در اتاق نشیمن هست بهش بده غول تعجب کرد و گفت تو چیزی رو انتخاب کردی که دست راست زن من بود ولی بله چون قول دادن قبول می‌کنم اون سک رو برای شاهزاده آورد حیوان با خوشحالی به طرفش دوید اما مرد هنوز از او میترسید و سعی می‌کرد تا اونجا که ممکنه به اون نزدیک نشه غول همراه شاهزاده به کنار دریا رفت در اونجا یه قایق سنگی کنار ساحل قرار داشت و بزرگ بود که هر دوی اونها به همراه سکتونستن سوارش بشن. وقتی به سرزمین اصلی رسیدند، غول برای شاهزاده آرزوی موفقیت کرد و گفت دو هفته دیگه، وقتی او و همسرش از دنیا رفتن، شاهزاده صاحب همه اموال داخل جزیره خواهد شد. مرد جوان از محبتهای او تشکر کرد و غول به خونه برگشت. رینگ کمی از دریا دور شد، اما نمیدونست وارد چه زرزمینی شده و از حرف زدن با سگ هم وحشت داشت بعد از مدتی قدم زدن در سکوت سگ سک رو رو به او کرد و گفت به نظر میاد تو زیاد کنجکاف نیستی چون اصلا اسم من نمی نمیپرسی شاهزاده از روی اجبار پرسید اسمت چیه؟ سگ گفت بهتره مرا اسناتی اسناتی صدا کنی ما الان داریم به طرف محل زندگی پادشاه میریم و تو باید از پادشاه بخوای تمام طول زمستون از ما مراقبت کنه و یه اتاق کوچیک به هر دوی ما بده کم کم ترس شاهزاده در مورد سگ از بین میرفت آنها نزد پادشاه رفتند و از او خواستند در طول زمستون به اونها پناه بده و او هم قبول کرد وقتی افراد پادشاه چشمشون به سگ افتاد شروع کردن به خندیدن و اذیت کردن سگ شاهزاده اونها رو نصیحت کرد و گفت دست از این کار بردارند وگر وگرنه بد می بینن. اونها جواب دادن حرفهای او هیچ اهمیتی براشون نداره. پس از گذشت چند روز از اقامت رینگ در کاخ پادشاه کم کم علاقه پادشاه به مرد جوون زیاد شد و بیشتر از بقیه به او احترام میذاشت پادشاه وزیری به نام ردی داشت که وقتی میدید پادشاه چه احترامی به رینگ میذاره حسودیش میشد. یه روز با اون شروع به صحبت کرد و گفت: نمیفهمه چرا او به این غریبه اینقدر محبت میکنه. در حالی که او هیچ برتری و امتیازی نسبت به بقیه نداره. پادشاه جواب داد که او فقط چند روزه به اونجا اومده و شاید شایستگیهای های زیادی داشته باشه. ردی پیشنهاد داد پردا هر دوی اونها رو به جنگل بفرسته تا ببینه کدام یک میتونن درختای بیشتری رو قطع کنن. اسناتی این حرفا رو شنید و به رینگ گفت از پادشاه دو تبر بخوا تا اگر یکی از اونها شکست تبر دیگه داشته باشه. صبح روز بعد پادشاه از رینگ و ردی خواست به جنگل برند و درختها رو قطع کنن. هر دو قبول کردن. رینگ دو تبر برداشت و هر کدام به یه طرف رفتن. وقتی شاهزاده به جنگل رسید اسناتی یکی از ها رو برداشت و مشغول قطع کردن درختها شد. بعد از اون وقتی پادشاه همانطور که ردی گفته بود به جنگل رفت تا نتیجه کار آن روز اونها را رو ببینه درخت هایی که رینگ قطع کرده بود دو برابر درخت های ردی بود پادشاه گفت من میدونستم رینگ آدم به درد نخوری نیست تا به حال ندیده بودم کسی بتونه یه روزه این همه کار کنه حالا رینگ از همه بیشتر مورد توجه پادشاه قرار گرفت ردی از همیشه دلخورتر بود یه روز او به پادشاه گفت اگه رینگ خیلی قدرتمند او بخوای گاوهای وحشی رو که در جنگل زندگی میکنن بکشه و همون موقع پوستشون رو بکنه و شب با شاخ و پوست اونها برگرده پادشاه گفت چنین دستوری قابل اجرا نیست اونها خیلی خطرناکند و هیچکس تا به حال جرات نکرده به جنگشون بره در سیم اگه پیروز بشه پادشاه بهونه خوبی خواهد داشت تا او رو جزو درباریان کنه. پادشاه با اینکه زیاد راضی نبود اما بالاخره تسلیم اصرارهای ردی شد و یک روز از رینگ خواست گاوب‌های جنگل رو بکشه و شاخ و پوستشون رو تا شب براش بیاره. رینگ که از خطر این کار خبر نداشت فوری به راه افتاد. ردی مطمئن بود که او دیگه برنخواهد نخواهد گشت و از خوشحالی در پوستش نمی‌گنجید. اما اینکه رینگ نزدیک گاب ها رسید آنها با دیدن اون شروع کردن به نعره کشیدن یکی از اونها خیلی بزرگ بود و یکی دیگه کمی کوچیک‌تر رینگ خیلی ترسیده بود اسناتی پرسید اوزا چطوره شاهزاده جواب داد اصلا خوب نیست اسناتی گفت به هر حال ای نداریم جز اینکه با اونها بجنگیم بهتره تو سراغ گاو کوچکتر بری و من فکری به حال حیوان بزرگتر میکنم بعد از این حرف اسناتی به گاو بزرگ حمله کرد و در مدت کوتاهی اونو شکست داد در اون مدت شاهزاده با ترس و لرز سراغ گاو دوم رفته بود و چیزی نمونده بود گاو او رو له کنه که اسناتی به کمکش اومد و حیوان رو کشت بعد هر کدوم مشغول کندن پوست یکی از گاوها شدند اما رینگ هنوز نصف کارش رو هم انجام نداده بود اسناتی کار خودش رو تموم کرد. بعد از ظهر وقتی همه دستورات اجرا شد، شاهزاده به قدری خسته بود که نمیتونست شاخها و پوستها رو با خودش ببره. و واسناتی گفت همه بارها را به پشت او بذاره تا به دروازه قصر بیاره. شاهزاده قبول کرد و همه چیز را پشت سگ گذاشت و فقط پوست گاو کوچیک را با خودش برداشت. وقتی جلوی دروازه قصر رسیدند، او همه چیز را روی زمین گذاشت. سراغ پادشاه رفت و از او خواست همراهش برو جلوی دروازه شاخها و ها را به او تحویل داد. پادشاه از شجاعت او خیلی تعجب کرد و گفت تا به حال کسی را مثل او ندیده و ازمیم قلب به خاطر کاری که کرده از او تشکر کرد. بعد از اون ماجرا رینگ همیشه کنار پادشاه بود و همه به او احترام میذاشتند. و او را به عنوان یه قهرمان بزرگ می شناختن. ردی دیگه نمیتونست علی او حرفی بزنه. اگر چه تصمیم گرفته بود هر طور که شده نابودش کنه. یه روز فکر خوبی به ذهنش رسید. سراغ پادشاه رفت و گفت: میخواد چیزی بگه. پادشاه گفت: حرف تو بزن. ردی گفت که به طور اتفاقی یاد اون لباس طلا، صفحه شطرنج طلا و تیکه طلای درخشانی افتاده که پادشاه یه سال قبل گم کرده. پادشاه گفت اونها رو به یاد من ننداز اما ردی به حرفش ادامه داد و گفت به ذهنش رسیده حالا که رینگ مرد قدرتمندی و هر کاری ازش برمیاد بهتر پادشاه ازش بخواد که به جستجوی انوال گمشادش بره تا قبل از کلیسمس اونها رو برگردونه در عوض اگر موفق شد پادشاه میتونه دخترش رو بهش بده پادشاه گفت که به نظر او خواستن چنین کاری از رینگ عاقلانه نیست و او نمیتونه اون اشیا رو پیدا کنه اما ردی بدون توجه به حرف های پادشاه اونقدر اصرار کرد تا پادشاه تسلیم شد تقریبا یه ماه قبل از کریسمس روزی پادشاه با رینگ شروع به صحبت کرد و گفت که درخواست مهمی از او داره رینگ گفت چه درخواستی پادشاه گفت درخواست من اینه که لباس طلا صفحه شطرنج طلا و تک تلای درخشانی رو که یه سال قبل از من دزدیده شده برام پیدا کنی. اگه بتونی خبر از که ریسم اونها رو به من برگردونی دخترم رو به همسری تو در میارم. رینگ گفت خب کجا باید دنبالشون بگردم؟ پادشاه گفت نمیدونم. خودت باید این رو بفهمی. رینگ از اتاق پادشاه بیرون اومد و به فکر فرو رفت چون کار سختی از و خواسته شده بود. اما از طرف دیگه فکر میکرد که این خیلی عالیه که کسی شانس ازدواج با دختر پادشاه رو داشته باشه اسناتی وقتی دید صاحبش سردرگم شده به او گفت که نباید درخواست پادشاه رو رد کنه حتی اگر کار خیلی مشکلی از او خواسته باشه شاهزاده این پیشنهاد را قبول کرد و خودش رو برای سفر آماده کرد پس از خارج شدن از قصر پادشاه جستجوی اونها شروع شد اسناتی به او گفت حالا باید اول از همه این اطراف بگردی تا اونجا که میتونی نمک جمع کنی شاهزاده همین کارو کرد و اونقدر نمک جمع کرد که به سختی میتونست اونها رو حمل کنه اما اسناتی گفت کیسه نمک رو به پشت من ببند بعد سگ جلوی شاهزاده شروع به دویدن کرد و اونقدر به راهشون ادامه دادن تا به صخره شیبداری رسیدند اسناتی گفت باید از اینجا بالا بریم شاهزاده گفت به نظر کار ساده ای نمیاد اسناتی گفت دم رو محکم بگیر و به این صورت او رینگ را تا روی پایینترین تپه کشید. شاهزاده سرگیجه گرفته بود اما اسناتی به راهش ادامه داد. اونها به تپه دوم رسیدن. رینگ نزدیک بود از شدت قستگی از حال بره اما اسناتی برای سومین بار تلاشش را آغاز کرد. اونها به تپه سوم و قله صخره رسیدند. شاهزاده این بار روی زمین ولو شد و از هوش رفت. بعد از چند لحظه وقتی کمی قصتگی در کردن به راه افتادند و مسافت کوتاهی را روی سطح همواری جلو رفتند تا به یک غار رسیدند آنها وارد غار شدند و داخل اون یه پنجره پیدا کردند وقتی از پشت اون نگاه کردند چهار غول رو دیدند که کنار آتیش خابیده بودند و ظرف غذای بزرگی روی شوله ها آویزون بود اسناتی گفت حالا باید همین نمک نمکها رو توی ظرف غذا بریزیرین همین کار رو کرد و خیلی زود قول بیدار شدن عجوزه پیری که از همه اونها وحشن نکتر بود اول از همه سراغ غذا رفت و مزه اونو امتحان کرد بعد گفت یعنی چه؟ چرا غذا اینقدر شوره؟ من دیروز شیر رو با جادوگری از چهار کشور مختلف آوردم و توی این غذا ریختم پس چرا شوره؟ بقیه هم جلو اومدن و غذا رو چشیدند و گفتند مزهش خوبه اما بعد از اینکه غذاشونو خوردن عجوزه پیر به شدت تشنه شد و از دخترش خواست بیرون بره و از رودخونهی که همون نزدیکی بود براش آب بیاره دختر گفت نمیرم مگر اینکه اون تکه طلای درخشانت رو به من قرض بدی عجوزه گفت اگه بمیرم هم نمیذارم دست تو به اون برسه دختر گفت پس بمیر اجوزه پیر گفت خیلی خوب بچه بیا بگیر و برو زود آب بیار. دختر طلا رو گرفت و بیرون دوید. طلا به قدری درخشان بود که همه جا رو روشن کرد. به محض اینکه دختر به رودخونه رسید نشست تا کمی آب بنوشه. اما همون موقع مرد جوان و سگ روش پریدن و او را با سر به رودخونه هل دادن. عجوزه پیر وقتی دید از آب خبری نشد فکر کرد دختر داره با یه تکه طلا این طرف و اون طرف میره و بازی میکنه به همین دلیل از پسرش خواست بره براش آب بیاره پسر گفت نمیرم مگر اینکه اون لباس طلا رو به من بدی عجوزه گفت اگه بمیرم هم نمیذارم دست تو به اون برسه پسر گفت پس بمیر عجوزه پیر گفت خیلی خوب بیا بگیر و برو زود آب بیار او لباس را پوشید و بیرون رفت و درخشش لباس جلوی راهش را کاملا روشن میکرد. وقتی او هم به رودخونه رسید مثل خواهرش خم شد تا آب بنوشه اما ناگهان هون رینگ و روش پریدن. لباس را از او گرفتند و به داخل رودخونه پرتش کردن. عجوزه پیر که دیگه تشنگی طاقتش را بریده بود از شوهرش خواست براش آب بیاره و گفت حتما اون بچه های شیطون مشغول بازی شدند. غول پیر گفت نمیرم مگر اینکه اون صفحه شطرنج طلا رو به من قرض بدی. عجوزه گفت اگه بمیرم هم نمیذارم دست تو به اون برسه. مرد گفت به نفته که به حرفم گوش بدی وگرنه به خواستت نمیرسی. اجوزه پیر گفت بیا بگیرش تو هم مثل رفتار اون دو تا بچه رفتار میکنی غول پیر در حالی که صفحه شطرنج طلا رو به دست گرفته بود خودشو به رودخونه رسوند. می میخواست کمی آب بنوشه که رینگ و اسناتی روش پریدند و صفحه شطرنج را از او گرفتند و او رو به داخل رودخونه هل دادند اما قبل از اون که اسناتی و رینگ دوباره خودشونو به غار برسونن پسر بیچاره قول رو دیدن که خودش رو از توی آب بیرون میکشه اسناتی فوری روی او پرید و رینگ هم به کمکش رفت. بعد از یه نبرد سخت اونها موفق شدند، برای دومین بار شکست بدن وقتی اون دو خودشون رو به پشت پنجره رسوندن دیدند اجوزه پیر به طرف در میره اسناکی گفت حالا ما باید فوری وارد بشیم و اونو شکست بدیم چون اگه از قار بیرون بیاد دیگه هیچ شانسی نخواهیم داشت او بدترین جادوگری هست که من در عمرم دیدم و هیچ شمشیری اونو زخمی نمیکنه یکی از ما باید بقیه غذای داغ توی ظرف روی اون بریزه و یکی دیگه باید آهن داغ رو به اون بچسبونه بعد از این حرف اونها وارد شدند به محض اینکه چشم عجوزه به اونها افتاد گفت پس بالاخره اومدی شاساد رینگ تو باید از شوهر و بچه های من خبر داشته باشی اسناتی فهمید که او میخواد به اونها حمله کنه فوری آهن گداخته را از آتیش برداشت و به طرف او پرت کرد رینگ هم غذای داغ رو روی او ریخت و به این ترتیب موفق شدند عجوزه را بکشند بعد گول پیر را آتش زدند، غار را گشتند و مقدار زیادی طلا و جواهر پیدا کردند. بعد با ارزشترین وسایل را برداشتند و پایین صخره پنهون کردند و با عجله به طرف قصر پادشاه برگشتند. در آخرین ساعت‌های شب کریسمس، رینگ سه وسیله گم شده پادشاه را به او برگردوند. پادشاه خیلی خوشحال شد و از حوش و شجاعت رینگ حیرت کرد. او بیشتر از همیشه به شاهزاده احترام گذاشت و دخترش را به نامزدی او در آورد. جشن نامزدی تا پایان کریسمس ادامه داشت. رینگ از پادشاه به خاطر همه محبت‌هایش تشکر کرد و بعد از آنکه به اندازه کافی خرد و نوشید برای خواب به اتاقش رفت. اما اسناتی اجازه خواست آن شب را روی تخت شاهزاده بخوابه و شاهزاده در جای سگ استراحت کنه رینگ گفت که هیچ اشکالی نداره و او لیاقت بیشتر از این رو داره به این ترتیب اسناتی روی تخت شاهزاده خوابید اما کمی بعد برگشت و به رینگ گفت حالا میتونه خودش به اونجا بره اما باید مواظب باشه به هر چیزی که روی تخت بود دست نزنه و اما بشنوید از ردی او وارد تالار شد و دست راستش را که از بازو قطع شده بود به پادشاه نشون داد و گفت حالا میتونه بفهمه نامزد دخترش چطور آدمیه چون دست او را بدون هیچ دلیلی قطع کرده پادشاه عصبانی شد و گفت به زودی حقیقت را خواهد فهمید و اگر رینگ دست او را بدون دلیل موجه قط کرده باشه اعدام خواهد شد و در غیر این صورت ردی جانش را از دست خواهد داد به این ترتیب پادشاه رینگ را احضار کرد و پرسید به چه علت دست به چنین کاری زده و اما اسناتی همه اتفاقی را که در طول شب افتاده بود برای رینگ تعریف کرده بود و مرد جوان به جای جواب دادن پادشاه را همراه خود برد تا چیزی نشونش بده پادشاه با او به اتاق خواب رفت و دید یک دست مردانه در حالی که شمشیری را محکم گرفته است توی تخت افتاده رینگ گفت صاحب این دست دیشب وارد اتاق من شد و اگه از خودم دفاع نکرده بودم منو میکشت پادشاه گفت چون او از جانش دفاع کرده نباید مجازات بشه اما ردی لایق مرگه و به این ترتیب ردی اعدام شد و رینگ با دختر پادشاه ازدواج کرد شب اول زندگی اونها اصناتی از رینگ اجازه گرفت تا پایین تخت بخوابه و رینگ هم قبول کرد نیمه های شب بود که مرد جوان از کنار تخت سر و شنید فوری چراغ رو روشن کرد و دید یه پوست سگ روی زمین افتاده و شاهزادهی زیبایی کنارش خوابیده رینگ فوری پوست را آتیش زد و بعد شاهزاده را که ق در خواب بود بیدار کرد. داماد اسم او را پرسید و او جواب داد که اسمش رینگ و پسر یه پادشاست، بعد تعریف کرد که در جوانی مادرش را از دست داده و پدرش با یه جادوگر ازدواج کرده. جادوگر تلسمی خونده تا او تبدیل به سگ بش و نابود نمیشد مگر اینکه یه شاهزاده با همون اسم اجازه بده در اولین شب ازدواجش او کنار تختشون بخوابه. او در ادامه گفت به بحث اینکه جادوگر فهمید تو هم اسم من هستی سعی کرد نابودت کنه تا نتونی تلسم رو نابود کنی او همان گوزنی بود که تو افرادت تعقیبش کردید همون زنی که کنار بشکل نشسته بود همون اجوزه پیری که در غار کشته شد پردای اون شب دو شاهزاده هم اسم همراه ادهی به طرف سخره رفتند و همه جواهرات رو به قصر آوردند بعد به جزیره رفتند و تمام وسایل با رو با خود آوردند خواهرش خوهرش اینگیورگ را به همسری شاهزاده هم اسمش که از تلسم آزاد شده بود در آورد و زو خواست از سرزمین پدرش مراقبت کنه اما خودش کنار پدر زنش ماند و تا وقتی او زنده بود، نصف سرزمین متعلق به رینگ بود و بعد از مرگش، مرد جوان پادشاه همه سرزمین شد. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های افسانه‌ای صوتی. نشانی کانال تلگرامی t.me/mehrandoosti t نقتم e m eh r an dی و stی نشان وبلا ماm نقط COم مهران دوستی. blog.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستستانی